سوره فجر موضوع دوم سوره اعلا را که موضوع تزهید من دنیاست بیشتر دنبال می کند بیشتر اون موضوع در این سوره بیان شده اما الله عز و جل آغاز می فرماید سوره را هم با سوگند به بعضی چیزهای مکرم و مقدس الله می فرماید فجر قسم به فجر مراد از فجر چی هست؟ بیشتر مفسران معتقد هستند که فجر مبارک یعنی دهم زیحجه مراد است روز عید قربان مراد است از ابن عباس رضی الله عنهما همین روایت شده و لیال عشر و قسم به شبهای دهگانه شب شبهای دهگانه بعضی میگویند هم همون شبهای زلحجه هست عشر زلحجه هست خب چرا شب گفته چرا روز نگفته قبلا این نکتر خدمت شما عرض کردم چونکه از نظر حساب قمری حساب از شب شروع میشه اینجا اشاره به این هست که اصل حساب حساب قمری هست از شب شروع میشه، از شب آغاز میشه چونکه ما حساب را با ماه میکنیم و ماه در اول شب پدیدار میشه، اول شب ظاهر میشه لذا های دهگانه یعنی شبهای زیحجه اما بسیاری از مفسران دیگه میگن منظور ده شب آخر ماه مبارک رمضان است. از ابن عباس رضی اللہ عنہما همین تفسیر منقول شده گویا الله تعالی به بهترین اوقاتی که در دنیا برای بندگان خودش آفریده اون, بند اون اوقات را به اون اوقات و ساعات خاص سوگند یاد می کند که یکی از اون اوقات بهترین روز روز دهم زی حجه است و همچنین ده ماه مبارک رمضان آخرین ده شب ماه مبارک رمضان است و الشفع والوتر و سوگند به جفت و طاق جفت و تاق چی هست؟ بعضی گفتند جفت طاق مراد الله عز وجل که هست واحد هست شریکی ندارد بقیه هرچی تو این دنیا هست همه جفت است. یعنی دو تا هست، تا هست، چار تا هست بیشتر از یکی هست تنها ذاتی که یکی هست الله عز وجل هست بعضی این مفهوم را گفتن اما این زیاد قوی نیست این ها بیشتر قیاسی هست در این رابطه ما حدیثی داریم که این حدیث را علام قرطبی نقل کرده وقتی که ما نقل داشته باشیم یعنی حدیث داشته باشیم به عقل نمیریم و به سوی اون چیزی که قیاسی باشد مراجعه نمی کنیم. حضرت امران من حسین رضی الله تعالی عنه صحابی هست ایشون روایت می که مراد از شفع نمازها هستند اون نمازهایی که جفتن دو و چهار و نماز از وتر اون نمازی که تاغ هست مثل نمازهای سرکتی مثل نماز مغرب یا نماز وتر. لذا الله عز وجل يفرميت والشفع والوتر رويا مرفوعا عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفع والوتر الصلاة منها شفع ومنها وتر والليل إذا يسر وقسم بشب وقتك شب ميرود شبك ميرود اون وقت وقت السهر است نا ميره اون وقت, وقت مباركي است وقت التهجداس وقت إجابة دعا، به ترين ساعات hass وقت استغفارس والليل إذا يسر يسر بمن يذهب إن مثله آيات والليل إذا أدبر هل في ذلك قسم الذي حجر الله تعالى بإنهاء سجند ياد ميكوند وبعد ميفرميات كه هم أنا يا استفهام تقريري يا بمن قاد Hass هم أنا در إين سجند قسم هست یعنی عبرت هست وقت سوگند هست لذی حجر برای عاقل حجر است به معنی من هست اما عقل را حجر میگویند چون انسان را از کارهای درست من میکند از کاری که فایده داشته نباشد و ضرر باشد انسان را من میکند لذا الله میفرماید در این سوگند عبرتی هست برای کسانی که چی هستند؟ عاقل هستند، فهمیده هستند یعنی الله عزوجل به این اوقات سوگند یاد کرده جواب قسم تمام مفهوم ما بعد هست که خدای تعالی در ادامه ذکر میکند با اقوام گذشته چه کردم اونهایی که تمرد کردند اونهایی که انکار کردند پیام پروردگار را اونهایی که دعوت انبیاء را پشت دادند خدا با اونها چه رفتاری کرد لذا یعنی معنیش اینه که قسم به این اوقات مقدس و ساعات خاص که هر کسی که مثل اونها رفتار بکند هر کسی که مثل اونها معامله بکند با او همون رفتار میشه لذا الله می الم كيف فعل ربك بعاد آیه دیدی چه برخورد کرد رب تو با قوم عاد کدوم عاد یعنی عاد ایرم خدمت شما ارز کردم که ایرم نام جد قوم عاد هست جد بزرگشون که ایرم بعد از چهار پشت به حضرت نو علیه السلام میرسد پس ایرم از نوادگان سیدنا نو هست بعد از چهار پشت ایرم ذات العماد دارای عماد بودند عماد دو معنا دارد بعضی گفتند عماد از عمود خیمه هست ستون چون که اینها بادی نشون بودند و سهران نشین و چادر نشین همیشه با خودشون روی شتورهای خودشون عماد را داشتند ستونها را داشتند و خیمه ها را داشتند از این جا به اون جا از این کو به اون کو کوچ میکردن بر اساس سرما و گرما بر اساس بهار و غیر بهار لذا به این خاطر این هر میگن ذات العماد بازی مفسرین همین نوشتند کانو اهل اعمده و خیام و ماشیت سیاره فی الربیع دارای ستون و دارای خیمه و دارای شطور و بودند سیار بودند در فصل بهار. اما بعضی دیگر که این قول دوم قول سهی به نظر می رسد و بعضی آیات دیگر تطبیق دارد این ها را ذات العماد میگویم خاطر قد و قامتشون اصلا هر یکی چنان قدی داشت چنان قامتی داشت چنان قد بلند بود که گویی یک ستونی هست کان طولهم مثل العماد کان طولهم مثل العماد طول چون چونکه خدای عز و جل در آیات دیگه ذکر میفرماید وقتی که عذاب آمد و اینها را خدا نابود کرد که انهم اعجاز و نخل خاویه مثل تنه درخت خورما خب تنه درخت خورما و خودش یک چی هست؟ یک ستونی هست پس معلوم میشه که مراد از ذات العماد اشاره به قد و قوارشون هست قد و قامتشون هست که مثل یک درخت خورما مثل یک ستون قدشون ده متر پونزده متر بود الله تعالی در ادامه همین شعر میفرماید الاتی لم یخلق مثلها فی البلاد ذات العماد که مثل اونها در شهرها آفریده نشده بود پس مراد از ذات العماد عرض به خدمت شما که چی نمیتونه باشه خیمه نمیتونه باشه خیمه ما هم داریم ما هم که قدرت بدنی آنچنانی نداریم مردم ما هم خیمه دارن شطور دارن اون عماد و ستون را دارن پس اون به معنای دیگه هست التي لم يخلق مثلها في بلاد آن قوم عادی که مثل انها آفرید نشده در شهرها دیدی پروردگر با اونها چه رفتاری کرد ما در سوره دیگه خاندیم چیکار کرد خدا با انها و سمود الذین جاب و سخرا بالواد دیدی که چکار کرد رب تو با قوم سمود قوم سمودی که تراشیدند سخراها را در وادیها در قرا در رو ساها سخره سنگ را کوه را می که کوه را که بتراشی هم از سرم سرما هم از گرما هم از طوفان هم از زلزله از هر خطر محفوظ بودن اونا تو دل کوه برای خودشون درست کردند خونه درست کردند که هیچ آسیبی بهشون نرسد اما خدا وقتی که ازا باورد با یک سیحه و با یک فریادی جگرهاشون را پاره کرد و انها سکت کردند و مردند لذا اللہ می فرماید و ثمود اللذین این را هم عرض کردم قبلا خدمت شما که قوم ثمود بقایه قوم عاد بودند بعد از زید، اینکه قوم عاد حلاق شدند قوم ثمود همو مسلمانانی بودند که باقی مانده بودند آمدند در حجر زندگی کردند در منطقه دیگری از یمن و بالاخره اونجا کم کم دوباره شرک و بت پرستی در میانشان رواج شد و فرعون ذل اوتاد و چنین فرعون که دارای میخ بود ذل اوتاد بعضی گفتن کنایه از استحکامو و چون که هر که میخای خیمه بیشتر باشد استحکامش بیشتر میشه و بعضی گفتن کنایه از ارتش ارتش و سپاه بسیار قوی داشت چون کسانی که هر اندازه که ارتشی ها بیشتر باشد میخا که هر جا میرند هر جا هر جا میرن برای جنگ و چادر میزنند بیشتر خواهد بود و بعضی میگن میخ اشاره به نوع شکنجه فرعون هست این ظالم با میخ شکنجه میداد کسانی که مجرم بودن بلخصوص خصوص درباره‌ی بیبی بی آسیه بنت مزاحم که همسر فرعون بود بعد از اینکه که ایمان آورد به موسی در ایشون میاد که چار دست و پایش را به چار تا میخ میبست و دستور میداد که با شلاق بزنند با شلاغ میزدند و او فریاد میکشید لذا به این خاطر زل اوتاد میگن نوع شکنجش کسانی که افراد را به هر نوع شکنجه بدن و هر نوع شکنجگاه داشته باشند بعدا اون حکومت ها را نسبت میدم به بی همون شکنجگاه ها مثلا یک حکومتی میگن که حکومتی است که زندان ابو غریب را داشته حکومتی است که گوانتنامو را داشته حکومتی است که فلان را داشت خب منظور اشاره به نوع شکنجهاش هست بس این هم اشاره به نوع شکنجه فرعون اورinaire ذل اوتاد الَّذِينَ تَغَوْا فِي البلاد، انهایی که در شهرات تغیانگری کردن، سرکشی کردن، تمرد کردن، فاکثروا فیها الفساد. همینها، هم فرعون، هم عاد، هم سمود، در این شهرها فساد زیاد کردند. اما الله عز وجل به بسرشون زد. اون شلاغ شلاغی چی بود؟ تازیانه عذاب بود. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عذاب. پس ریخت پروردگار برانها سبب بمانه ریختن است و کوتک زدن است فوق است از بالای سر است برانها صوت عذاب یعنی عذاب تازیانه را هر یکی را با یک چیزی الله زد تازیانه کرد به اصطلاح. یکی را با طوفان، یکی را با غرق اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْمِرْسَات همانا پروردگار تو همیشه در انتظار هست در کمین هست بندگان متمرد و مجرم و سرکش. اونایی که ظلم میکنند مثل این گروه اونها را خداوند زیاد مهلت نمیده دیکتاتور چه روز خودش را سپری میکند ظلم خودش را میکند مردم را میکشد آخر آقبت خودش ما میبینیم انجام و عاقبت خیلی دیکتاتورها را میبینیم خیلی هستند آخر خود کشی میکنند از بس که از نظر روحی شکنجه میشند و عذاب میبینند لذا الله می فرماید ان ربک لبالمرصات ان عذاب تنها مخصوص اینها نیست رب تو در کمین هست در انتظار هست همواره برای ظالمها الله تعالی منتظر وقتشون که برسه به بدترین عذاب و مؤاخذه گرفتارشون میکنه فامل الانسان اذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه و ونعمہ اینجا خدای عزوجل برای انسان زجر و عتاب بیان می فرماید سرزنش می کند و مریزیش را هم ذکر میکنه که مریضی انسان چیه این مریضی تا زمانی که در میان ما باشد ما موفق نخواهیم شد ببین انسان عقیدش چیه فا الانسان انسان, انسان هرگاه که او را مبتلا بکند ربش گرفتارش بکند برش آزمایش بیارد شکستگی مالی بشه ها یعنی که صورت اول هست خدای تعالی با نعمت امتحانش میکنه بیش مال میده بیش سروت میده بیش خوشی میده بیش جشن و سرور میده موقعیت های خوبی براش فراهم میکند و مبتلاه ربه وقتی که او را ربش بی آزماید فاکرمه فا و نعمه ورا اکرام کنه و نعمت بده فیکول ربی اکرما میگوید رب من مرا اکرام کرد رب من مرا اکرام کرد و اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه اما اگر برعکس ورشکستگی شکستگی برش بیاره خسارت بیاره مالی جانی وقتی که امتحان میکنه فاکرمه و فقدر علیه رزقه رزق را برو تنگ میکنه یا مصیبت دیگری برش میاره فیقول ربی اهانا میگه خدا مرا ذلیل کرد ببین اشکال کار کجاست مگه اون اولی را خدا نکرد این دومی را هم خدا کرد هر عزتی داد هر ذلتی درسته مال داد هم خدا داد مال گرفت هم خدا گرفت خوشی داد خدا داد مصیبت آورد هم خدا آورد پس اشکال کار کجاست ؟ اشکال کار اینه که کسی که مال داره میگه ربی اکرما مرا عزت داد. اینجا میگه ربی اانن مرا ذلیل کرد. انسان بیچاره فکر میکنه که مدار عزت و بر برمال اشکال اصلی ایجاست. اشکال اصلی کجاست؟ که انسان فکر میکنه مدار عزت و ذلت برمال بر سرمایه هست، بر پول هست در حالی که این نیست. بسیاری سرمایداران هستند که عزیزان بسیاری هستند که زلیلند، بسیاری از فقرا هستند که عزیزان بسیاری هستند که زلیلند. ما سرمایدار مثل قارون هم داریم، سرمایدار مثل عثمان زننورن هم داریم، فقیر مثل ابوهریره داریم، فقراهای دیگری که بلاخره بدبخت بودند و کافر بودند هم داریم لذا مدار عزت و ذلت بر مال نیست بر فقر و سرمایداری نیست بلکه مدار عزت و ذلت بر اطاعت خدا و معصیت خداست هر وقتی توفیق کار خیر داشتی هر وقتی توفیق اطاعت و بندگی داشتی عزیزی هر وقتی که توفیق کار خوب نداشتی همش گناه میکنی زلیلی داری زلیل میشی ذلت در این است، عزت در آن است، در طاعت و بندگی هست خیلی از ما مسلمانان هستیم گاهی بعضی برادران گاهی خوهران پیام میدن برش مشکلی پیش آمده یکی مثلا شوهرش طلاق داده یکی شوهرش فوت کرده یکی پسرش را از دست داده یکی ماشینش را از دست داده یکی مالش را میگه خدا چرا من دوست نداره خدا چرا از من برگشته مگر عزت را شما در همین مال میبینید اگر در, م... در حالت مالداری و در حالت فقر در هر دو صورت رابطه با خدا فرقی نکرد تو عزیز استی اما اگر در هر صورتی شما از خدا فاصله داری ذلیلی پس عزت و ذلت را در چیزها ندانید در وسایل ندانید. و اما فقدر عليه رزقا فیقول رب اهانا رزق را تنگ بکند میگه رب من مرا اهانت کرد این شکایت میکنه این طور نیست خلا بل لا البته بعضی از اسباب ظاهری را که خداوند برای انسان ها مشکلات میاره هم ذکر میکنه اصل عمل کرده خود انسان است مثلا یک انسانی گاهی خدا امتحان میکنه گاهی خدا تنبیه میکنه امتحان میکنه که آیا این بنده رابطه اش در حالت عصر و فرق دارد گاهی بنده کوتاهی میکنه خدا برایش ضرر میاره برایش آسیب میاره مثلا چه اتائی های این وظائف وظائف همه ماست کلا کل بلا تکرمون الیتیم این بیان مرض است هرگز این تورنیس که شما بگید مطلقا خدا حالات را نمی گاهی حالات را می آورد به خاطر اینکه بل تکرمون الیتیم بلکه شما یتیم ها را اکرام نمی کنید به یتیم ها رسیدگی نمی کنید ولا تحاضون على طعام المسکین و هم دیگر را تحریک نمی کنید تشویق نمی کنید به در این شهر شب و روز بهترین غذا و خوراک و کیک تولد آنچنانی اما جامی هستن در حاشیه شبهه از گرسنگی خواب نمیرن چرا شما نسبت به بی اینها بیتفاوت هستید ولا تحاضون علی تعامل انها جزء کارهایی است که برای شما مشکلات میاره و همچنی علاوه زین و تاکلون ترا فا لما مال میراث را میخورید اکل لما اکلا جمیعا لم چی را میگن؟ لم میگویند جمع بین الحلال و الحرام سهم خودت را هم میخوری که مال خودت از خوب برات حرام سهم خوهرت را هم میخوری سهم برادری کوچکت را میخوری چقدر بعضی ها از خدا نمیترسند و مال میراث را براحت بالا میکشند در حالی که الله عز و میفرماید کسانی که مال یتیم میخورند ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما مال ان ما في بطونهم ان آتش لذا التراث اكل لما خدا یکی از دلایلی که خدا برای شما مصیبت میاره اینه که مال میراث را میخوری خوردن جمع جمع یا جمعی یعنی چه یعنی جمع بین الحلال و الحرام هم مال خودت را میخوری هم مال اون ضعیف را میخوری هم مال اون قاهر بی دفا را میخوری هم مال اون برادر صغیر را میخوری لذا به این خاطر برات مشکل میاد یهو میبینی که یک آفتی آمد یک مصیبتی آمد در یک حادثه یک میلیارد دو میلیارد ده میلیارد ضرر کردی چرا؟ ببین این فرق دیگر. المال طحبونالمال حبنت جمع و مال دوست دارید محبت اینا تمام علت اصلی همینه محبتی محبتی که زیاده جمع میگویم محبتم مفرط را محبت بیش از را کلا هرگز کسی نیست که تا ابد شما با همین مال و با همین رفاه و با همین خوشی سپری بکنید بلکه الله می فرماید در آینده حوادث میاد اذا دکت الارض دک دکا وقتی که به هم کوبیده بشه زمین زمین خرد میشه کوبیده میشه دکن دکاف یعنی کوبد شدنی و ریزه ریزه شدنی و جا ربک و صفن صفا خداوند می آیت خداوند می آید همان طوری که شعن پروردگار است همانطوری که لایق بزارت الله است می آید برای حساب و کتاب شما می آید برای فیصله کردن، و همچین فرشتگان صف بسته می آیند و جی ایوم اینم بجهنم اون روز جهنم آورده میشه جهنم از جای دیگه آورده نمیشه فقط پرده را بر میدارند دیگه جهنم و جنت هر دو ظاهر میشه یوم ایلین یتذکر الانسان اون روز انسان پند میگیرد بیادش میاد که من چی کردم و ان له الذکر این پند برای چه فائدهی دارد چه سودی دارد میفرماید یقول یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی این انسان میگه کاش من برای زندگی خودم چیزی میفرستادم، تقدیم میکردم برای زندگی اینجا چون هیچی نفرستاده دست خالی رفته لذا اونجا حسرت میخوره دیر شده حسرت را انسان اینجا بخوره اینجا که آیات را میخونه اینجا انسان به فکر باشه به فکر تدبیر باشه فیومئذل لا یعذب عذابه أحد ولا یوثق وثاقه أحد در در روز عذاب نمیدهد مثل عذاب الله هیچ کسی ولا یوثق وثاقه أحد احد نمیکنه گرفتار نمیکنه مثل گرفتاری الله هیچ کسی اونطور که خدا گرفتار میکنه نکار پادشاهان دنیاست نکار فراعنه است گرفتی خدا عذاب خدا الله نجات بده خیلی سخته اون وقت الله عز و جل این گروه را برای انها تخویف هست برای اینها در واقع عذاب است اما گروه دیگر که برایشون بشارت است برای آنها مجد است اونها را الله خطاب میکنه یا ها نفس المطمئن ای نفس مطمئنه ای نفس مطمئنه قبلا بنده اقسام نفس را توضیح دادم سن و نفس داریم امارا لوامه مطمئنه سومی مطمئنه هست و این را هم عرض کردم مطمئنه اون نفسی هست که صاحب نفس اینقدر بر او کار می کند این بر او زحمت می کشد و تربیتش می کند که تنها و تنها صورت اطمینان و آرامش این نفس در طاعت و بندگی هست اگر خلاف کرد، این نفس قلق دارد، استراب دارد، این نفس پریشانی، این نفس گویی که این را تو آتش انداختند. اما وقتی که عبادت انجام میده، لطف میبره. وقتی که نماز تجدید میکنه، لذت میبره، کیف میکنه. حتی در راه خدا خون میده، جان میده. مثل صحابه رسول الله میگه سعیان به خدا که زیر این شمشیرها این قدر ما راحت هستیم که شما در بهترین جاهای تفریحی اونقدر راحت نیستید و فرموش شهادت برای ما انقدر لذت و انقدر ما لذت میبریم که شما در از جامحای شراب اون لذت را نمیبرید این نفس مطمئن نحس یعنی در مسیر حق اطمینان حاصل شده ما هم نفس خودمون را آزمایش بکنیم آیا ما این شرایط را داریم آیا شده که ما هر وقت نماز خواندیم راحت بشیم و لذت ببریم؟ آیا شده که وقتی برای نماز بلند میشیم احساس بکنیم که ما به طرف راحتی داری میریم؟ یعنی بار سنگینی هست اذا قامو الی صلاة قامو کسالا به نماز میستند کسل میستند سنگین میشه بدن؟ رسول الله فرمود، ارحنا یا بلال راحت در نماز بود فرمود که ما را با نماز راحت بکن فرمود جو علت و عینی فی السلات خونکی چشم من راحت چشم من و جسم و جان من در نماز هست آیا این شرایط برای ما هست اگر ما این شرایط را داریم بهترین لذت را ما این در نماز اگر احساس کردیم حتی از غذا خوردن بیشتر در نماز احساس کردیم اون وقت بدونید که نفس ما نفس مطمئن نه است حضرت شیخ الاسلام تعریف می از جوانیشون در جوانی فرمودن اون زمان یک باری تشکیل شدیم ما و یک نفری را نام بردند اون نفر یک انسان بسیار صالحی هست از همین روستاهای غرب زاهدان می که این نفر همیشه عادت داشت تا وضو می گرفت درکت نماز میخواند، درکت تحییت الوزوم تا این که بلاخرین مسجد میامد درکت تحییت المسجد یک عشق خاصی به نماز داشت میفرمایی یک روز سفره آمده بود و نشسته بودن برادران جماعتی سر سفره و منتظر دوستان بودن او وزو گرفته بود زود وارد مسجد شد و کسی صدا زد، صدا زد اون خودش را به نشنیدن گرفت، کسی دنبالش کرد که بگه بیا اول غذا بخوریم، که همه منتظر شما هستن، هنوز این فرد نرسیده و اون زود نیت کرد نمازش را شروع کرد. یعنی اینقدر اون برای نماز حریص بود که سفره از نظرش به نظرش نیامد. کسی که واقعا عشق داشته باشه، و کسی که واقعا لذت را در نماز احساس بکنه، این نفس نفس مطمئنه است. الله می فرماید یا ایتهالنفس المطمئنه ای نفسی که مطمئنه هستی یعنی اطمینانش در طاعت و بندگی خداست. ارجعی الی ربک راضیه تم برگرد سوی ربت. بعضی میگوین این در قیامت گفته میشه یعنی برو به بهشت. بعضی میگن نه این خطاب در زمان موت است. وقتی که انسان میخواد بمیره، فرشته اون را میگه برگرد به سوی رب در عالم برزخ، در اون روح و ریحان منتظر باش، تا این که بعدم به بحشت هم داخل بشید. ارجعی الى ربک راضیت مرضیه. این بشارت اول بشارت برزخ. برگرد سوی ربت در حالی که راضیت تو راضی باشی. یعنی اون برخوردی ربت با تو بیکنه که تو راضی باشی. مرضیه یعنی رب هم از تو راضی. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. داخل شو در بندگان من؟ در زمره بندگان من قرار بگیر و در بندگان خاص یعنی جز ابرار و صالحین و همچنین ودخولی جنتی داخل بهشت من باش داخل بهشت من شو اونجا برو از هایی که برات فراهم کردم استفاده کنم خدای عزواجل همه ما را از این گروه و از این قشت بگرداند